فصل چهاردهم همچنان که دوستان کزیم و هرچه بیشتر می کسانی هم بودند که کینه او را به دل میگرفتند. پس از کتاب شدن جوانی خرنگ و آنچه پس از آن رویداد، ولگردان جنگل به وضع بدی دچار شده بودند شبی که برادرم درون پوستینی بالای یک درخت زبان گنجشک خوابیده بود با صدای پارس سگش بیدار شد چش باز کرد و روشنایی را پایین پایش دید. در پای همان درخت آتشی روشن کرده بودند که شعله هایش آن را در بر میگرفت. آتش سوزی در جنگل. کار چه کسی می توانست باشد؟ ما به یاد آورد که آن شب از سنگ آتش استفاده نکرده بود. بیشک کار تبهکاران بود. بران بودند که جنگل را به آتش بکشند تا هم تخصیر آتش سوزی را به گردن کوزیمو بیاندازند و هم شاید او را زنده زنده بسوزانند. کوزیمو حتی یک لحظه هم به خودش فکر نکرد. قلم روی جنگلیش با همه راه هایی که می شناخت و نهانگاه هایی که برای خود یافته بود در خطر نابودی بود. از این فکر به وحشت افتاد. اپتیموس ماکسیموس از دست و ها به پشت سر میانداخت و ناله می کرد. آتش در میان بوته ها پیش می رفت. خود را نباخت. همان گونه که عادتش بود، چیزهای گوناگونی را همراه خود به بالای درخت زبان گنجشک برده بود. از جمله، بشکه کوچکی از شربت بادام داشت که انگام تشنگی از آن می نوشید. خود را به بشکه رساند سنجاب ها و خفاش های حراسان از لابلای شاخه ها می گریختند. پرندگان از آشیانه های خود پر میکشیدند. کوزیمو بشک را برداشت و بر بود که تنه درخت را خیز کند. اما به این فکر افتاد که تا همان زمان آتش در میان علفها و برگ های خشک و درخچه ها گسترش یافته است و به زودی به درختان دیگر میرسد. بهتر دید که زبان گنجشک را فدای درختان دیگر کند. بوکسر بسوزد. اگر بتوانم زمین های دور آتش را خیز کنم، جلوی پیشروی آتش را میگیرم. در بشک را باز کرد و با شربت بادام شعله های دورتر را خاموش کرد. آتش در میان حلقی از سبز و برگ خیز محاصره شد و پیشتر نرفت. کوزیما از نوک درخت زبان گنجشک جستی زد و خود را به آلشی در نزدیکی آن رساند. در همین هنگام تنه درخت آتش گرفته به دونیم شد و چون تکه زم عظیمی به زمین افتاد. سنجاب ها سرگشته به هر سو دویدن. آیا آتش سوزی همانجا پایان می گرفت؟ نه، اخگرهایی به هر سوپرتاب پرتاب میشد آن بشکه کوچک برای مهار کردن آتش بس نبود. کوزیمو با همه توانش فریاد زد. آتش! آتش! آتش! تلی از زغال آن نزدیکی بود. گروهی از مردمان برگامو که دوست کوزیمو بودند در زاغی در کنار آن می خوابیدند. آتش! آتش چیزی نگذشت که فریادهای از سراسر سر کوهستان بلند شد زغالکارانی که در گوشه و کنار جنگل پراکنده بودند یکدیگر را صدا میزدند. از هر سو خود را به آتش رساندند و آن را خاموش کردند آن آتش سوزی و نخستین سوی قصدی که به جان کزیما شد می او را به این فکر اندازد که خود را از جنگل دور نگه دارد اما برعکس او را به این فکر انداخت که راهی برای جلوگیری از آتش سوزی بیابد تابستانی گرم و خشک بود. یک هفته می شد که آتش سوزی سهمگینی جنگل های دریا در نزدیکی پروانس را می سوزند. شب روشنایی آن آتش از بالای کو دیده می شد که به باستاب خورشید شامگاهی می مانست. در هوای آنچنان گرم و خشک همه درختان و گیاهان چون بارود آتش پذیر بود. چونین این می که بعد آن آتش سوزی را به سوی سرزمین ما میآورد. آتشی اتفاقی یا عمدی بسنده بود تا سراسر کناری دریا را یک پارچه شعله ور کند. در برابر این خطر بزرگ، اون دستخوش دست خوش بیم و بود. همچون دژی با بام های کاهی که آتش افروزانی آن را در میان گرفته باشند. حتی آسمان آکنده از آتش جلوه می‌کرد. هر شب بارانی از ستارگان دنبال دار آسمان را در مینوردید و می ترسیدیم که مبادا بر سر ما بریزد. در آن روزهای بیم و حراس همگانی کزیم و را پار از آب کرد و بر فراز درختان داد که بلندتر از دیگران بودند و جایشان مناسب بود. با خود می اندیشید. چندان کاری از پیش نمیبرد، برد اما همونطور که دیدیم به هر حال به درد می خورد. به بررسی جویبارهایی پرداخت که از میان جنگل میگذشت و بیشترشان نیم خشک بود و چشمهایی که باریکه آبی از آنها بیرون می‌زد. به دیدن شوالیه وکیل رفت و مسئله را با او در میان گذاشت اناس سیلویوس کارگا با کف دست به پیشانی خود کوبید و حیجان زده فریاد زد درست است منبع آب صد باید دست بکار شد و نخشی کشی این را گفت و شادمانه به جست و خیز پرداخت جیغ های کوتاهی می کشید و طرهای تازه یکی پس از دیگری به سرش میزد کوزیمو او را به محاسبه و تهیه نقشه گماشت سپس به سراغ زمینداران مستعجران جنگل های خالسه و هیزم شکنان رفت و آنان را به مسئله علاق كرد. کرد همه دست به دست هم دادند و با رهبری شوالی وکیل به کار پرداختند شاید بهتر از گفته شود که جناب وکیل مجبور شد کارها را رهبری کند بیان آنکه حتی فرصت یک دقیقه خیال بافی را پیدا کند. مخزنهای آبی در همه جای جنگر کار گذاشته شد. بدین گونه در هر کجا که آتش سوزی روی میداد، میشد آن را با تلمبه خاموش کرد. خود کزیمو از بالای درختان بر کارها نظارت میکرد. اما این نیز بس نبود. باید دسته ویژه ای را برای آتش نشانی سازماندهی میکردند. و گروهایی را به وجود می‌آوردند که بتوانند هنگام آتشسوزی بیدرنگ بسیج شوند و بتوانند دلوهای آب را زنجیروار به هم برسانند و از گسترش آتشسوزی جلوگیری کنند. برای این کار نوعی نیروی نیمه منظم به وجود آمد که همواره آماده بود و کسانی را برای پاسداری و گشت شبانه می گماشت. کوزیمو نیرو را از مردمان دهقان و پیشور تشکیل داده بود. همان گونه که در همه انجمن‌ها دیده می‌شود، این نیرو نیز به زودی حالتی یک پارچه و هم بسته به خود گرفت و دارای روحیه ای شد که خود را به انجام هر کار بزرگی توانا حس می کرد. خود کزیمون حس می کرد که دارای نیرو و توانه تازه ای شده است. میدید که آمادگی و توانایی سازماندهی و رهبری مردمان را دارد. خوشبختانه به خوبی میدانست که نباید از این موقعیت سو استفاده کند. تنها چند بار در سراسر زندگی خود، سرکردگی مردم را به عهده گرفت که همیشه نیز در شرایط استثنایی بود و هر بار به پیروزی بزرگی دست یافت این را میدانست که همبستگی و سازمانیابی انسان را نیرومند می‌کند توانایی و استعداد هر کس را شکوفا می‌سازد و شادی و شوری را به وجود می‌آورد که در زندگی تک‌روانه به ندرت اسم می‌شود شادی پیبردن به این نکته که مردمان بسیاری هستند که همه خوب و, و کار آمدند و کارآمدند و میتوان به آنان اعتماد کرد. هنگامی که آدمی تنها و تک رو زندگی می کند، فقط یک جنبه انسانهای دیگر را میبیند. جنبه ای که آدمی را وا می دارد همواره به باشد و حالتی دفاعی به خود بگیرد. در نتیجه آن تابستان آکنده است هر ساعت سوزی به خوبی و خوشی گذشت. مسئله همگانی در میان بود که همگان به چاره برای آن علاقه داشتند. و همه آن را مهمتر از منافع فردی خیش می‌دانستند. همین خوشنودی که خود را با مردمانی خوب و دوست داشتنی هم بسته میدیدند و از احترام آنان برخوردار بودند، بهترین موزد برای جانفشانی بود. کوزیمو به اطها این نکته پی برد که هنگامی که دیگر مسئلهی همگانی در میان نیست، انجامنها مفهوم خود را از دست می دهند و در این صورت تنها بودن بهتر از رهبر بودن است. اما تا پیش از آن همچنان انجمن را رهبری میکرد و همان گونه که تا آن زمان زندگی کرده بود شبها را تنها بالای درختی به سر میبرد و از جنگر پاسداری می کرد. هر بار که به آتشی بر زنگی زنگی را که در نوک درختی کار گذاشته بود و صدای آن تا دور دستها شنیده میشد به صدا در میآورد. به همین وسیله مردم روزضا توانستند سه چهار آتش سوزی را به هنگام خاموش کنند و نگذارند جنگل بسوزد آتش ها عمدی بود. روشن شد که کارکار کار اوگو گنده و لوریو خوشگله است. دو راه زن از ناحیه بیرون انداخته شدند. در پایان ماه اوت رگبارها باریدن گرفت. خطر گذشته بود. در آن دوره همه در اون روزا از برادرم ستایش می کردند. این گفته ها به گوش ما هم می رسید. اما خودمانیم آدم کار است خیلی کارها از دستش برمیآید. این را با لحن کسی میگفتند که میکوشد بیطرفانه درباره‌ی آدمی داوری کند که مذهب دیگری دارد یا از طایفه‌ی مخالفی است تا نشان دهد که آزادوار میاندیشد و حتی میتواند برداشت‌هایی را که خود از آنها نفرت دارد درک کند. ژنرال در برابر این گفته‌ها واکنشی سپاهیانه نشان می داد. هنگامی که از پاسداران جنگلی کازیمو گفتگو میشد، او میپرسید: اسلحه دارند؟ تمرین نظامی میکنند؟ هنوز هیچ نشده طرح برپایی نیروهایی شبه نظامی را در سر می که در صورت جنگ بتوانند در عملیات رزمی شرکت کنند. پدرمان گوش می کرد و سر می و چیزی نمی گفت. نمی شد دانست که آیا آن خبرهایی که درباره پسرش می شنید داغ درش را تازه می کرد یا اینکه بر برعکس مایه خوشنودیش می شد و در ته دلش او را وا می داشت تا دوباره به تداوم نام و نشان امیدوار شود. این گمان درستتر به نظر می رسید چرا که چند روزی پس از آن رویدادها بر اسب نشست و به دیدن پسرش رفت. در تک زمین بازی که ردیفی از درختان قوش آن را در گرفته بود، با هم دیدار کردند. بارون دو سه بار اسب خود را دور زمین چرخاند، بی آنکه نگاهی به پسرش بیاندازد. هرچند هر چند که او را دیده بود. کزیما از روی چند شاخه پرید و خود را به نزدیکی او رساند. هنگامی که با پدر رودرود شد، کلاه حسیریش را ها به جای کلاه پوستی به سر می گذاشت برداشت و گفت سلام پدر گرامی سلام پسرم حال شما خوب است حالی است که با این سن و این همه قصه می شود داشت خوشحالم که شما را سر حال می‌بینم من هم از سلامت تو خوشحالم شنیدم که وقت خودت را صرف خدمت به دیگران می‌کنی به جنگلی که محل زندگی‌ام است مندم و از آن نگهداری می‌کنم پدر گرامی میدانی که قسمتی از جنگل ملک ماست؟ ارث مرحوم مادر بزرگت هست. میدانم پدرچان، جایش را هم میدانم. سی شاه بلوت، بیست آلش، هشت کاج و یک افرا دارد. رو نوشته همه نخشه های تفکیکی ناحیه را دارم. به عنوان یکی از مالکان جنگل، سعی کردم همه کسانی را که در آن نفعی دارند، در یک انجامن جمع کنم. بارون که پنداری از آن پاسخ خوشش آمده بود گفت: درست است. ولی بعد گفت شنیدم که نانواها و نعلبندها و باغبانها هم در آن هستند درست است پدر گرامی نمایندگان همه ی ها هستند البته به شرطی که آدمهای درستی باشند میدانی که من به عنوان دوک میتوانم بر همه ی اشراف ناحیه فرماندهی کنم من فقط این را میدانم که اگر من بیشتر از دیگران چیز بدانم در صورت نیاز آنها باید آنچه را که بلدم در اختیارشان بگذارم به نظر من فرماندهی یعنی همین. بارون دلش خواست بگوید امروز روز راست بر این است که برای فرماندهی بالای درخت بنشینند. با دادن خرمنهای کهنه چه سودی داشت؟ آهی کشید و به فکر فرو رفت. سپس بند شمشیری را که از کمرش آویخته بود باز کرد و گفت: هجده سالت شده. وقت آن رسیده که با تو مثل یک مرد بالغ رفتار شود. من دیگر چیزی از عمرم نمانده. میدانی که تو باران روندو هستی؟ نامانشانم را از یاد نبارده پدر گرامی. کاری میکنی که لایق این نامانشان نشان باشی؟ چه از دستم بر بیاید میکنم تا لایق اسم و مشخصات انسان باشم. این شمشیر را شمشیر مرا بگیر. بارون روی رکابی استاد. و خم شد و پدر شمشیر را به کمر او بست. متشکرم پدر گرامی. قول می میدهم آن را در راه راست بکار ببرم. بدرود پسارم. پسرم بارون اسب را برگرداند دهنه را به نرمی کشید و آهسته آهسته دور شد. کزی و به این فکر افتاد که شاید بهتر بود هنگام خداحافظی شمشیرش را به احترام بیرون بکشد. اما با خود گفت که پدرش آن شمشیر را برای پیکار به کمر او بسته است و نه برای تشریفات از این رو؟ آن از نیام بیرون نکشی